در جاده ها، در جاده، در جاده، ها مجموعه برنامه های خاطرات سفر برنامه ای از وب رادیو گردشگری آی سفر. همراه میشیم با خاطرات آقای علی سلیمانی که بعد از 16 سال حالا دوباره پا در جاده ای می میذاره که آینده زندگیش در پیچو همه اون شرکی گرفته سفر یه راه پرمخاطره است یه راه خاطره انگیزه یه راه با ارزش و با شکوهه سفر بهونه نمیخواد دلیل نمیخواد مسافر که باشی چمدونت رو ساکت رو حتی کیفت رو برمیداری و راه میافتی همراه خودش میاد همراه همیشه همراهه هم قدم همیشه هم قدمه، گاهیوقات همراه توی سفر پیدا میشه، دوست توی سفر پیدا میشه، هم قدم توی سفر پیدا میشه. همیشه دنبال همراه و هم قدم نباشی، باید اهل سفر باشی، باید رفتنی باشی. یادم میاد پدر مرحومم بهم میگفت. اصرار نکن اومدنی میاد رفتنی میره موندنی هم میمونه باید ژن سفر توی خونت باشه باید ات از نوع سفر کردن باشه باید رفتن و سفر کردن رو دوست داشته باشی قصد و مقصد مهمه مبدأ مهم نیست مبده معلوم میشه مبده پیدا میشه دلیل نیاریم بهونه نیاری. درسته سفر کردن خطر داره همیشه توی راه آدم با خطرات زیادی مواجه میشه درسته که آدم میترسه نگران ولی ارزشش رو داره امروز 23 دی ماه 1398 من علی رضا سلیمانی بی دلیل البته دلیل که داشت ولی خیلی اتفاقی تصمیم گرفتم برم شهری که توش خیلی خاطره دارم شهری که پنج سال از زندگی پنج سال از عمرم و اونجا گذروندم و خیلی برام با ارزشه شهری که اونجا درس خوندم دانشگاه آزاد اسلامی واحد نراق نراق یه شهرستان کوچیکی یا بهتره بگم یه روستایی بوده نزدیک جاز بین استان کاشان و شهرستان دلیجان روزی که انتخاب رشته می می‌کردم اصلا نراغ رو نمی‌شناختم همینطوری اتفاقی که از ات دوستام یادش بخیر محمد زندی البته یادش بخیر که هنوز با هم دوستیم از اون دوستای باحال و مشتی و باصفا خیلی از دوستیمون نمیگذشت ولی عمقش خیلی زیاد بود محمد از اون بچه های خیلی بامرام و خیلی مشتی بود روزی که دفترچه پر کردیم، گفت علی سولی پایه کنی؟. نراغ رو انتخاب کنیم گفتم آخه نراق کجاست گفت من شنیدم شهر بحالیه گفتم باش انتخاب کردیم نمیدونستم اینقدر خوش تقدیره نمیدونستم اینقدر برام خوشبختی میاره قبول شدم رشته حساب داری سال 1382 16 سال پیش یه عمر. روزهای اول یه خورده ترس تو وجودم بود راستی بذارین اسمی دوست دیگه من براتون بیارم امیر احسان تفرش. ملقب به مزدک از دوستی من با مزدک حدوده ایش ده ساله که میگذره. 12 سال شنیدنش آسونه، ولی 12 سال با یه نفر دوست بودن خیلی راحت نیست. باید ان داشته باشی، باید پذیرشت بالا باشه، باید دوستی کردن و بلد باشی. من و مزدک 12 سال همدیگر رو پذیرفتیم. انقدر دوستی عمیق و زیادی با همدیگه داریم که حتی این دوستی به خانواده ها و حتی خانواده های دورترمون هم رسیده. یعنی خانواده من مزدک رو و خانواده مزدک من رو قبول کردم. مزدک خیلی به من قوت قلب میداد. روزهای اول تنها همراه من مزدک بود. حتا روز ثبت نام روز ثبت نام برای دانشجوها خیلی روز غریبیه خیلی روز حساسیه وارد یه دوره زندگی جدیدی میشی که خیلی استرس داری. خیلی هیجان داره هیچکی هیچکیو نمیشناسه یه جورایی همه با هم آشنا و ناآشنا یه جورایی انگاری همه رو میشناسی و هیچ کسی رو نمیشناسی مزدک با من همراه شد از میدان آرژانتین سوار اتوبوس شدیم و راه افتادیم به سمت دلیجان. حتی یادم میاد ساعت رش... ساعتی که راه افتادیم و خوب انتخاب نکردیم ساعت 4 پنج صبح رسیدیم دلیجان همه جا بسته بود خیلی هم هوا سرد بود درسته که تازه اوایل مهر ماه بود ولی خیلی سرد. چون که نراق یه شهرستان کوهستانیه و خیلی سرده حالا براتون تو میگم که توی نراق چه جاهای دیدنی داره و بیشتر با نراق آشنا خواهی شد قارنخ جیر حتما به گوشتون خورده نمیدونین وقتی که قارنخ جیر دلی رو کشف کردن چقدر احساس غرور کردن دلیلی نداره ولی خب به هر حال شهری بود قاری بود که توی شهرستانی بود که من توش درس میخوندم یک قار یک قار قندیلی بزرگ کشف شد و ما اونجا درس میخونیم. برام جالب بود خلاص دور نشم از صحبت مزدک همراه هم بود انتخاب های اولیه دانشگاه انتخاب های واحد انتخاب کردن استاد شروع شد. خب طبیعیه که خونه گرفتن و هم اتاقی انتخاب کردن کار خیلی سختیه برای دانشگاه محمد زندی و من خیلی نمی چون هم مزدک رو داشتم هم محمد اماند که چقدر دوست بعدها پیدا کردم ولی خب اون روزهای اولیه خورده دل هراور بود یه خونه باحال گرفتیم و تو شروع کردیم زندگی کردن چه زندگی چقدر بهمون مون خوش گذشت چقدر احساس خونسا بودن داشتم درسته که خیلی شرایط زندگی خوبی نداشتم تازه چهار سال بود که پدرم عمرش رو داده بود به شما خوهرم روزهای اولیه زندگیش رو داشت داشته پری میکرد و هر حال زیر فشار قسط و درامت های کم ولی کافی اون موقع جواب زندگیمون رو میداد ولی انگار همه چی سر جاش بود انگار کسی چیزی کم نداشت انگار انقدر مردم داغ نداشتن انقدر مردم ناراحت نبودن راستی چرا اینطوری شد نمیدونم یک سال گذشت شیطنت های جوونی توی سن 18-19 سالگی که همه پسرها دارن یک سال گذشت و من توی دانشگاه خیلی سرشناس شده بودم از طرفی دوستهای قدیمی و بچه محلهای قدیمی دوستایی که توی پارکهای محله باورتون نمیشه اصلا فکرشو نمی کردن. امید کنزی فرید مسعود رزاقی مگه میشه بابک تاجدی علی پریسکار آخه مگه میشه یه همچیزی بچه محلا توی دانشگاه باشن وای خیلی حس خوبی داشت انقدر کیف میکردیم که دنیا رو اگر آب میبرد ما رو خوشی حتی به من یادم میاد انتقالی با انتقالی منم موافقت کردم ولی من چون خیلی من خوش میگذشت نرفتم انقدر توی دانشگاه به من احترام می که فکر می کردم دانشگاه مال منه دانشگاه برای منه انگار این دانشگاه رو برای من ساختن شروع کردیم فعالیت های فرهنگی جلسات برگزار... برگزاری شعر جلسات ادبی، جلسات فرهنگی با دوستان ای مثل حجت آشمی خانم قربانی خانم نرجسی محمد نوبختی و خیلی کسایی که الان تو ذهنم نیستن آشنا شدم شریه ای رو منتشر کردیم به نام پل دوست داشتیم پلی بزنیم از سرزمین خصوصیمون یعنی دانشگاه به سرزمین های اطراف پل زدیم به دانشگاه های اطراف پل زدیم به شهرها و اقلیم های خصوصی بیرونمون پل زدیم به خونمون، پل زدیم به خیابون های پل زدیم به خیابون های کاشون، پل زدیم به شهرهای خیلی دور، دوستای جنوب کشوری، محمد یکتایی، محمد پناهی، بچه های ایزه، نشریه ای چاب کردیم به نام نشریه پل، حتی یک همایش هم برگزار کردیم از شاعر های شهرستان های و دانشگاه های مختلف دعوت کردیم و من شدم مجری اون نشریه شدم مجری اون همایش داشتم براتون میگفتم یک سالی گذشت ست... یک سال و نیم تقریبا سه ترم و یا چهارم از دانشگاه هم سپری شد. دختری توی زندگی من وارد شد که الان یکی از. یکی از که نه صمیمیترین بهترین و تنها ترین و خصوصی ترین رفیق زندگیم همسرم سمانه خانی پور کم نیست هفت یا هشت سال با دختری مهربون ساده بیالایش رفاقت کردن و دادن به ازدواج سال هشت و هشت ازدواج دانشگاه تموم شد تازه مرحله قشنگ و شیرین زندگی من در سن 25 سالگی شروع شد با کسی ازدواج کردم که خیلی دوستش داشتم سمانه هنوزم که هنوزه خیلی دختر مهربونه خوب و ساده ایه. همیشه پشت و پناه منه هیچ وقت تنها نمیزنم حاصل ده سال زندگی مشترکمون یک فرشته به نام لیانا که الان تو راه برگشت هستم قلبم داره براش از جا در میاد امیدوارم که همه همه کسایی که دارن صدای منو میشنونن دوران دانشجویی اگر سپری کردن که براشون خوش خاطره بوده باشه اگر هنوز وارد دانشگاه نشودن اگر هنوز تحصیلات آکادمیکشون رو نکردن بدونن که مرحله جدیدی از زندگی منتظرشونه مرحله شیرینی از زندگی داره صداشون میزنه بدون اینکه که اتفاقات قشنگ پیش روه بدون اینکه که زندگی چیزهایی پیش روتون قرار میده که شاید فکرش هم نکنید من هیچ وقت فکر ازدواج نبودم من هیچ وقت فکر تشکیل خانواده نبودم همیشه فکر می‌کردم بعد از فوت پدرم باید مسئولیت خواهر و مادرم رو به دوش بکشم ولی زندگی به من آموخت که یک برای مرد مسئولیت چند نفر چیزی نیست خدا رو شکر الان خدا بهم کمک میکنه و میتونم از پس مخارج زندگی در بیام امیدوارم که این روزها این روزهایی که الان دارم با تو صحبت میکنم روزهای سختیه برای مملکت روزهای حساسیه برای سرزمین قشنگم روزهای نگران کنندهیه برای ایران امیدوارم که با کمک همدیگه با همراهی همدیگه سفر کردن که فقط از مبدأ به مقصد رفتن نیست زندگی کردن هم سفر کردنه وقتی ما داریم زندگی میکنیم یعنی داریم سفر میکنیم باید در کنار مملکتمون پایدار بمونیم عشق بورزیم به هموطنانمون و بتونیم این سرزمین رو مثل همیشه گرد نگه داریم جاده تهران قوم خیلی جاده پرمخاطرهیه برای من امروز که این مسیر رو تی کردم چیزهای جالبی دیدم. ایگاه ها و استراحتگاههایی که قبلا نبود. پایگاه های استراحتی که قبلا نبود و الان احداث شده. جاده تهران قم درسته که جاده ساده و چه جوری براتون بگم خیلی جاده سرراستیه ولی برای من متر به مترش کیلومتر به کیلومترش خاطر است چه روزهایی رو که با اتوبوس با اتوبوس آقا از دانشگاه از ترمینال جنوب سوار می شدیم با بچه های دانشگاه با دوستانم سوار دانش... اتوبوس دانشگاه می شدیم و این مسیر چهار ساعت و رو نمی دونستیم و نمیفهمیدیم چه جوری طیه کردیم؟ و چه روزهایی که من با ماشین خودم با اون... هراید خوش خاطره این مسیر رو تیمی کردم روسایی که با سمانه آشنا شده بودم من نقش نقشه خانومی رو برای سمانه بازی می که می تونست من غیبت کنه می از خوابگاهشون بگه می از هم اوتاقیاش بگه میتونه از استاداش بگه و من از صمیم قلب بر واسه گوش میدادم همراه و همسفر و هم قدم پیدا میشه شما دلتونو رو بزنین به دریا دلتون رو بزنین به چاته بقیش حل، نگران نباشید ناراحت نباشید سفر راهی برای تکامل و برای بزرگ شدن حالا که براتون از پدرم گفتم حالا که وقتی همیشه مجبورم از بهش زهرا رد بشم و از عوارزی تهران قوم بگذرم حالا که این سفر این جاده تهران قم پدرم رو یادم میاره بی دلیل نمیدونم بی جهت نمیدونم دو بیت از یکی از شعرهای بلند پدرم رو حمید سلیمانی براتون بخونم امیدوارم که این شعر همراه همیشهگیتون باشه فقط. سکوت قمنگیز جاده مانده و من دلی شکسته و پایی پیاده مانده و من فقط سکوت قمنگیز جاده است چرا کسی به بدرقه من نیامده است چرا اگر سرتون رو درد یهورددم. دوست دارم یکی از شعرهای قدیمی رو که توی همین جاده توی همین اتوبان توی همین راه، توی یکی از همین شب های سرد زمونی سرودرم رو براتون بخونم. امیدوارم که گوش هاتون رو اذیت نکن. تویی که در این راه پر مسئله، از اولین قدم به بعد پیاده می شوی تویی که نیستی یو بی دلیل خطوط ممتده جاده می به صفر مطلق رسیده است مسئله توهی کسر می شویی هی ساده می شویی که نیستی و بیدلیل درون شعر من جا میمانی زاده میشوید دوستتون دارم ممنون علی سلیمانی ترجاده ها رو با ما گوش دادید در ویب گردشگری آی سفر